حکایت کسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد گفت شنیدم که فلان دشمن تو را خدای از برداشت، گفت هیچ شنیدی که مرا بگذاشت، اگر بمرد ادو جای شادمانی نیست که زندگانی ما نیست جاودانی نیست.